اس با انگیزه پرسنلی می دنید مدیری که با حرارت باشه، پیگیر کار باشه، میدونید؟ و اتوماتیکی پرسن همین حسو میگیرن. مدیران اثر فرصت می آفرینند و مدیران دنبالونو در انتظار فرصت می نشینن. خب؟ مدیر چون میخه وسط آسیاب باید ساکن استوار محکم باشد تا تشکیلات به درستی اول آن محور تیه تاریخ کنه. ش قدرت خطرناک ترین خودسری مدیر است. هیچ وقت مدیر نباید قدرت طلب باشه است. هنر مدیر تبدیل مشکلات به فرصت هاست موقعیت رهبر مدیر همانند موزه و نقش موزه و نقش نخ تصبیع است که داناها به هم میپیونندند. وقتی رشته پارش رو دانه ها پراکنده می و بدون نتیجه خواه ما. و هیچگاه در کنار یک جمع نخواهند شد موفق مدیران کسانه هستند که تا وقتی آن تنها تفا... تفا... تفاوت میان یک مدیر خوب و یک مدیر نچندان خوب در این است که اولی در سی ثانیه تصمیم میگیرد و دومی در همان تصمیمگیری به سی روز وقت میازدارد این که سرپرستی خوب یا مدیریت خوب یعنی چی؟ یعنی هنره واداشتن افراد متوسط به انجام کار عالی است. این آره؟ از فورد میلیاردر معروف آمریکایی و صاحب یکی از بزرگتر کارخانه‌های سازنده اتومبیل در آمریکا پرسیدند اگر شما فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید تمام ثروت خود را از دست داده اید. و دیگر چیزی در بساط ندارید چه میکنید؟ فورد پاسخ داد دوباره یکی از نیازهای اصلی مردم را شناسایی می‌کنم و با کار پوشش آن خدمت را با کیفیت و ارزان به مردم ارائه و مطمئن باشید بعد از پنج سال دوباره فورد امروز شد این قلبته میدونید که حالا یه سری نکات مدیریتی توشه دیگه این نکات مدیریتی رو سرچ کنید تو اینترنت جالبه این فورد خانون نقاط نقاط ده پیدا مهمی ولی یک خودش که بزرگ بشتر بعده دادن خیلی بعده، حالا شما باز بحث انگیزه رو که میکنیم میگه پادشاه در زمستان به نگهوان گفت سعدت نیست گفت عادت دارم، گفت میگویم برات لباس گرم بیاورن و فراموش کرد صبح جنازه نگهوان رو دیدن که روی دیوار نوشته بود به سرما عادت داشتم، اما وعده لباس گرمت مرا از پای در آورد وعده های باشیم ها این خب، بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم بسیار ما این سوال بسیار یک خایی هم خب ببینیم، ما جلسه گذشته مفاهیم استراتژی های کلان شرکتی را خیلی مرحوم بودیم درسته؟ استراتژی های کلان شرکتی چون استراتژی های کلان شرکتی؟ استراتژی یک پارچیکی بود یک پاتچگی عمودی رو به عقب، یک پاتچگی عمودی رو به جلو، یک پارچگی افقی. درسته؟ استراتژی‌های فواصل. سلام آقایان. خب بس در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، استراتژی‌های پذیری، مثل پذیری، همگن، ناهمگن، افقی و استراتژی ریترنشمنت، مثل کوچه. کوچکسازی، بورن استفاری و انلا. ما دوازک تا استراتژی در سطح کلان شرکتی داریم درست۱ده استراتژی در سطح کلان شرکتی کف گذشته اومدیم این استراتژی ها رو برای شما توضیح دادیم به همچنین وارد بث برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان شرکتی شدیم بیم برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان شرکتی شدیم هفته پیش نسیم اونجا که برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان شرکتی اولین روششه یکی از روشهاست روش سواد استابیلیته او با اوتی شما وضعیت موجود سازمان میتونید مشخص کنید از نظر نقاط قوت قوایت و تهدید درسته استابیلیتی بعد گفتیم ما از استبل اوتی شما استفاده می و وارد ماتریس جیگی میشی یا ماتریس مکنسی ماتریس مکنسی بر اساس خوجهایی که از استبلی اوتی میگیره سلام بر اساس خروجیهایی که از استبلی اوتی میگیره میگه کرده این شرکت استراتژیش برای استراتژی توجهی باشه تدوکیی باشه و استراتژی صبات باشه، درسته؟ و بعد از جی ما رسیدیم به ماتریس توز ماتریس توز، ماتریسیست که ما ازش استفاده می‌کنیم برای بحث برنامه رزی استراتیجیک در سطح کلان شرکتی درسته؟ در سطح کلان شرکتی این ماتریس ما هفته گودشته خدمتون توضیح دادیم گفتیم که در این ماتریس شما اس SO او دارید یعنی بهین سازی فرصت ها با استفاده از پوانایی یعنی از نقاط قبط سازمان استفاده می‌کنیم تا به فرصت ها حمله بکنیم یعنی چه برنامه استراتژیکی ما می‌تونیم داشته باشیم که از نقاط قوت استفاده بکنیم و به فرصت ها حمله بکنیم یا برنامه استی رو داشتیم یعنی آقا شما چه برنامه می‌تونید در سازمان داشته باشید؟ تا از نقاط قوت استفاده کنید و تحدیدات رو در سطح سازمانت neutralترلایس یا فونسا بکنید. و بله دبلی او را داشتیم یعنی برنامه که سازمان استفاده میکنه تا از نقاط ضعفش استفاده میکنه تا به فرصت حمله بکنه و دبلو چی رو داشتیم یعنی برنامههایی که سازمان از نقاط ضعف استفاده میکنه تا تحدیدات رو بخواد خوسا بکنه. بخش توز یکی از ابزارهاست برای فرایند برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک در سطح کلان شرکتی. درسته؟ رسیم امروز به QSPM. درسته؟ QSPM یا Quantitative Strategic Process Matrix. ماتریس کمی مدیریت استراتژیک. دوستان دوستان، دوستانی که خیلی آلمند سواد هستن، خب؟ هوا شد نمیاش شکنم چون خیلی تو کلاس با تو علاقم نشه به خودم علاقه من بودم خب سواد شامل چهار مرحله است سواد جی ای توز، و در نهایت کیو اس سواد بدون جی ای کیوسپیر کیو اس بی معنی یعنی چی؟ حلقات قوت فرصت تا شد، شرایط خود چیکارش بکنیم خب بعد یعنی این تطبیقش بریزید رو ماتریس مکنسی بر اساس ماتریس مکنسی در ماتریس تو برنامه ریزی بکنید و وارد کیو اس پی ام شه چیه ابزاری است که شما استراتژی های تدوین شده در طوزو چیکار میکنید اولویت بندی میکنید درسته خود شما کیو اس پی امو چیه توضیح بده چی هستیه اه... توضیح بده بریم چیه داستانش یعنی ست مرحله داره که این مرحله اولش اینه که تجزیه تحلیل هماهنگ میشی با نتایج تحلیل بعد استیج دوایی که در عین گزینهای استراتژی در عین گزینهای استراتژی متناوب یکی انتخاب میکنه بعد استیج یک یعنی تان دوباره یک توضیح کوتاه میدم تحلیل کلی استراتژی مدیریته چی استراتژی فاکتور رو شناسایی میکنه برای مثال افی و آی استفاده میکنه اون دو ای از... چیه؟ آی افی چیه؟ نه من یاد بگیرم یه بار دیگه بگو ای اف ای اف ای آی اف ای external factor evaluation ببین ما یه ای اف ای داریم یه آی, ای اف ای داریم ای اف ای میشه external factor evaluation ایفی میشه اینترنال فاکتور اولیه شه به زبان لوریش ایفی میشه همون نقاط فرصت و تهدید ایفی -E میشه نقاط ضعف و قوت حالا این مرد خیلی حالا همچین با کلاس کرد من میگم خیلی متفاوتی گفته خب بعد از اینکه شناسایی تعمیل کلی اعمام استراتژیکو انجام دادی برای بودی اکس اکیو اس پیم ما چون نوع استراتژی که می‌خوام دنبال کنیم و تنظیم کنیم و از فرمولای سوات و تول و اسپیس و پی سی می‌تونیم استفاده کنیم. مرحله سوم مرحله نسبت جذابیت و مهم بودن استراتژی مختلف رو بر اساس اندازه که کلیه موفق، عوامل موفقیت بیرونی و درونی بحران‌ها رو به خود می‌بخشه انجام بشه. می البته من تنیم رو اون اچ اٹرکتیونسو نمیدراستم. اٹرکتیونس هم اٹرکتیونو نمیدان مهم بودن جذابیت تراکتیونس سکور نه نمره جذابیت. ببینید مادر طوز سر برنامه استراتژیک نوشیم. اینا رو می اولویت بندی کن در QSPM، QSPM ابزاری است که برنامه های تدوین شده در توض اولویت بندی می‌کنه. خب خیلی خلاصه شد من بخوام بگم خیلی دیگه خلاصه شد. خب ماتریس ماتریس QSPM Okay. ستون اول خیلی ساده ستون اول فرصت تهدید نقاط قوت نقاط ضعف درسته هر آن چیزی رو که شما در سوال نوشته بودید عینم اینجا کپی پیست می‌کنید نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید درسته خب مرحله اول مرحله اول ستون دوم چیه ضریبه اهمیت دیگه درسته هر ذریع به اهمیتی که در سوال داشتی، در سوال ذریع به اهمیتش دیگه وزن داده بودید به نقاط قوت، زخف، فرصت و تعدیل ویت با قول معرف داده بودید اونم اینجا کپی paste کنید ها؟ اوکی؟ سطر اول چیه؟ سطر اول چی نوشته دوستان؟ S-O S-T W-O W-T درسته؟ ناید. سطر اول هر چیزی رو که شما در ماتریس برنامه ریزی کردی 10 تا استراتژی، 5 تا استراتژی، 15 تا استراتژی تو سطر اولت می‌نویسی. اوکی؟ بریم همین چه صورت. اصلاً خب اینکه کنیم بپرسم؟ آره آره یه دقیقه سر کن من اینو توضیح بدم. این ماتریس توز بود هفته گذشته با نوشتی دیگه درست آره؟ محیط خارجی رو ببخشیم تعلیل محیط داخلی هم هفته, و هفته پیش نوشتیم محیط خارجی هم هفته پیش، محیط داخلی خارجی هفته پیش نوشتیم و آمدیم در ماتریس توز و چند تا استراتژی اتخاص کردیم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هفته سه ده تا ده تا استراتژی نوشتیم درسته؟ حالا شما سوالتون رو بکنیم یعنی ماتریس تو جانم اصلا دستم نه مال کلانه واسه میخوام استراتژی کنام منم حواشی باشه میخوام درس کلاس بپرسم یا الان بپرسه. خب بپرسو اگه دیدم ارتباط داره جواب مینن نبود که میگم درس یکی که من اینجا توی اون اسیدی که بهمون دادی مر ایده استراتژی بود اینکه یه استراتژی یک پاشه افقی رو من با جوینت ونچر استراتژی متوجه نشم چه فرقی داره خب یعنی این یک پارچه همون بله صد درصد پس چرا 13 تا شده تو نکته ای استراتژی 13 جدا شده نه جدا کردیم توی یک پارچگی من جدا, جدا کردم نه توی هم سیدی تو همون نه تو کدوم قسمت جدا کردم تو همون قسمت استراتژی تو کدوم قسمتش جدا کردم تو خود جلبلش. مورد آها یعنی جونت وینچر یعنی گفتم آها متوجه شوم چالش شو میگه دقیقا اصلش اینه که ببین جونت وینچر یک از زیر مجموعه استراتژی یک واچگی افقیه چون گفتیم استراتژی یک واچگی افقیه یعنی همکاری بین دو تا سازمان یعنی استراتژی که سازمان همکاری میکنه با یک شرکت رقیب جد رسیدن به اهدافش حالا چرا من جدا کردم جونت وینچر استراتژی خیلی معروفیه این من به عنوان آیتم جدا آوردم بگن زی مجموعه یک واچگی افقیه آره آره خوش آمد خوندی خ... آره خیلی خوش داشته ایرانیس یادم تنبه نیستم آره نه آقا مقایسه کرده اونجا خب بینیم با هم یه ریویو داشته باشیم حالا میخوام برای کیو اس پی ام بشم درسته؟ دوستان تو کیو اس پی ام ستون اول چیه؟ فرصت، تهدید، نقاط قوت و زد. نقاط زد اینن از سوات من اومدم اینجا کپی پیست کردم یعنی اولین فرصت من چی بود تو سواتم؟ محیط خارجی ها؟ فرصت ها بود درسته؟ مشتریان تو فرصت ها دوامش کننده، سوم جغرافیا، چهارمیش فرهنگی میریم تو ماتریس توز مشتریان تحمیل کننده، جغرافیا و؟ فرهنگ. فرهنگی درسته؟ یا تحدیداتمون به همین صورت رقباک، حالای خدمات جایگزینی اقتصادی، نقاط قوت، ضعفمونم بخشی من تو توی اسمیم نقاط قوت و ضعفمونم به همین صورت دانش سازمانی، برند، وفاداری، پرسنل، سیستم فروش و بازاریابی، ضعفمونم، نقدینگی، سیستم مکانی سیستم صحام داری و تدشیزار خب و وزنم به همین صورت مشتریان ما وزنش در سازمان سی درصد بود دقیق در این فرصت سی درصد بود حالا برین که موه ایت خارجی بونه مشتعل 30 درصد یعنی عیناً هر اون چیزی که شما در سوغات دارین فرصت و ورث و آیتم دیسکریپشنو عیناً بکپی پیس کنم ببرش بذارمش توی ماتریس کیو اس پی ام اوکی خب بریم تو ماتریس کیو اس پی ام بریم قسمت بالا سطر اول سطر اول چی اولی سطر اس او درسته اس او های بنیس اینجا آن چیزی، آن برنامههایی که زیر مجموعه SO اینجا بنویس خب؟ استراتیجی که زیرمجموعه مجموعه ST اینجا زیر مجموعه او اینجا تی هم اینجا برگردیم یعنی تو ماتریس توز ماتریس اس SO چیه اینجا؟ رسوخ در, در بازار تنم پذیر با پذیری سیستم های؟ انگیزش. انگیزشی انگیزش. پچه چند تا استراتژی SO مادری داریم؟ سه تا خب؟ اینی این ای سه تا رو میهه توی کیو اسپیه من بزرگترش میکنم خب؟ SO اولین SO من چیه؟ رسوختن؟ بازار اینجا می نمیسی؟ پنر با پذیری اینجا می نمیسی؟ یک پارچه گیرم؟ اینجا می نمیسی خب؟ بعد بگر تو توز W-O من چیه؟ تا w او داریم درست یا نه؟ اخذ وام دانش سازمانی برونسپاری و تجهیزات میاد اینجا دوباره تو کیو اس پی درسته اس وامون دا استیامون درسته؟ نه استیام دا او بودش بریم ببین دا کجاست این بالا میاد پیدا میکنه دا او اینا اخذ وام میلیمیسی، دانش سازمانی، برون سپاری و توسعه تجهیزات. درسته؟ استراتژی بعدی ما تو توس چی بودش؟ اس... او رو گفتیم، دابنی او رو گفتیم بعدی چیه دوستان؟ استی ست استی داریم، برو تو کیو اس استی رو ببین افزایش کیفیت، مدیریت ارتباط با تعمیل کنندگان، ترویج برند ده استراتژی اینجا تو ستون اولش مینیویسی خب پس کیو اس ام امالا کپی پیست از سواف و توس حدود پنجا درصدش بریم بقیه پنجاه درصدش رو بریم داستانچی خب. ما به هر فرصت، تهدید، نقاط و نقاط ضعف وزنش اینجا نوشتیم درسته؟ یه ستون اینجا هست، یک متقیر اینجا هست به نام نمره جذابیت درسته؟ اترکتیبنس اسکر نمره جذابیت یاد کنید دوست داره. نمره جذابیت از صفر تا چهار رنجش از صفر تا چهار خو؟ خب؟ نمره جذابیت یا AS هم بهش میگن خب ما دنبان یه شاخصی هستیم به نام توتال attractiveness score خب که است با AS زبدر دابلیو دابلیو میشه وزن خب؟ دابلیو میشه وزن جمع نمره میبیند اینجا این total attractiveness scoreه مساویس با attractiveness score نمره جذابیت زبدر؟ وزن وزن یا ضریب اهمیت خو؟ حالا این عرشت بعد تو میگم چه جنوب پس ببینید ما در QSPM دنبال توتال Attractiveness اسکور هستیم توتال Attractiveness اسکور با Attractiveness اسکور ای اس در وییت یا وزن برای همین چه محاسبه میشه خب، دوستان، دقت کنید اول این فرصتمون چیه؟ مشتریان، درسته؟ ها؟ ذریبه همیته چقدره؟ سی درصد من رسوخت در بازار به عنوان استراتژی اول میخوام توتال attractiveness scoreش رو محاسبه کنم خب، <تصفح> اول نمره جذابیت بشمیم نمره جذابیت از صفت تا چهار بردیم از صفت تا چهار باید بریم، درسته؟ ها؟ نمره جذابیت از صرف تا چهار رسوخ در بازار، به با عنوان یک استراتژی، رسوخ در بازار به با عنوان یک استراتژی. و فرصتها، که اولین فرصت مشتریانه درسته؟ مشتریان به عنوان یک فرصت، به عنوان یک عامل محیط بیرونی چقدر تاثیر میذاره روی این استراتژی ما تحت اومال روسخت در بازار. این اگه بخوایم ما روسیخ در بازار داشته باشیم مشتری چقدر تاثیر میذاره روش ها؟ از ص تا چهار تا نمره بدیم صفر هیچ تاثیری نداره؟ چهار حد اکثر تاثیره داره چه نمره بهش میبدیم؟ چهار تاثیر خیلی زیادی داره. مشتری مشتک نخوااد شما روسخ در بازار نه توی داشته باشید؟ درست کردم پس نمره چه رو میدیم. این اترکتیفنس اسکوره خب چهار زفت داره سه میشه مساویس با یک و دو دهم ده این توتال اترکتیفنس سکوره مونه درسته؟ خب تعمیه کنندگان به عنوان یک فرصت برای بیزینس ما چه تأثیری میذارن که ما بتونیم رسوخ در بازار رو داشته باشیم خب چقدر تعمیه کنندگان بر رسوخ در بازار تاثیر میذارن روی این استراتژی تاثیر میذارن به یک عامل بیرونی در سازمان خیلی خوب تعمیل کننده یا عامل بیرونیه خب، چقدر تحصیل میزه روی استراتجی ما؟ استراتژی ما رسوف در بازار ما اصلا تا چهار نمره بدیم، مثلا نمره سه رو میدیم ها، سه میدیم سه در دو هم، توتالت تکلیم نست اسفارش مساویس با 6 دهم. محیط جغرافی هایی در رسوختر بازار چه تحصیلی میذاره از صفت تا چهار بخوایم نمره بدیم حالا مثلا فصل نمره سه رو میدیم یا فرهنگی نمره سه رو میدیم از ص تا چهار یعنی میخوایم بدونیم این فرصت ها روی این استراتژی ما چه تحصیلی میذاره درسته؟ بریم بعدی استراتژی بعدمون چیه؟ تنرگو پذیریم تنرگو پذیری. این فرصت ها مشتریان رو تنف و پذیری چه تاثیری میذارن؟ از تا چهار میکنی نمره بدیم ما اینجا نمره سه رو دادیم خب؟ تعمیه کنندگان به عنوان یک فرصت روی تنف پذیری چه رو تاثیری نمره چهار رو بهش دادیم متوجه هستی؟ یا جغرافی ها فرهنگی نمره چهار و سه رو دادیم به همین صورت تطالت تکلیم نسست کنم برای تنف و پذیری محاسبه شد. میاد اما بله نمیاد. داره. این نداره شونی. نه شوروش نداره شونی. فرهنگی اساس اصلا, س... اصلا سه مورده فرهنگی تو مال ما نمیدونم. من نه، مادیشیت نه. باس کردم. نه. نه نه نه. خب کردم. نمیدونم ازیم آره. نمیدونم. نه نیست. ما فرصتی نداره فرهنگی جغرافیا. اینه با مال نمونه حالا ما باس کردیم. یکی نمونه. هم. خب نمره یک پار خب؟ خب اصطبان اولا ما یه دنش سر سر در نظر داشته باشیم بعد بیارم نیسا تو فرهنگی زهیب که اون چیزش رو دست بیاریم من من در رضا شکلت کار در رضا داشت شما در نظر هستی نه چه مزرس دیگه باز کنم آن چه کنم؟ تو متوجه بشو من <تصفح> پنجهات تا فایل برای باز تو آدم. باز میکنم کیفا یه جوری گفتم شادکان هم نموکنی همه چی دارم توی تو یاد بگیر اینا من با شرکت خودم باز میکنم آره با شرکت خودم باز میکنم من شرکت شما کامره باشدار شنیم خدا با خودم فرنگی شرکت اینا صفر فروچهرم اینجا یا جغرافی تنظر <تصفيق> سیارتی تو تشکرم فرصت نوشتیم ها اوکی هفته پیش این ما سازمان ما ساخت فرصت تهدیدا درسته درست ها نواته حالا دیگه نواته قوت و ضعف بریم تو ماتریس درست درست خب باش خب پس فرصت اول تحریم درسته حجم رقابت، کالا و خدمات جایگزین موانع ورود به بازار این شد دیگه درسته نه. که رسوخ در بازارش رو نوشتیم ط با پذیریسه 4 4 3 بریم یک پارچهگیر رو نمره بدیم به عنوان یک اس او دیگه عنوان یک اس او یک پارچهگیر ما توی یک پارچگی ما سیستم های انگیزشی رو نوشته بودیم درسته ها اینجا رو میذایم سیستم های انگیزشی. می‌می‌می‌سیم سیستم انگیزشی سیستم‌های انگیزشی درسته؟ های تحریم تحریم‌ها به عنوان یک فرصت چه تأثیری رو سیستم‌های انگیزشی می‌ذاره؟ از صف تا چهار نمره بده نمره جذابیت تحصیل رو چه رو سیستم‌ها که داره؟ تحریم میشه تاثیر سیستم انگیزشی میزنه. باشد بیشتر. اونام. کاملاً استقلال. بله این براي آخرين شدیم اطلاعمون می‌دهنام نیشن سنام یه پرسنل تو سامان. ولی خب. انگیزشی. چیز نداره. من فهم می‌کنم که انگیزه واسطه میشه انگیزه ایجاد بشه خاطر اینکه میخوان تولید خودشون انجام بدن که شون تأخیر می‌نداشته. انگیزش منظور من انگیزش پرسونل در اون سازمانیه ها. خوب. من فهمم کنم که اگه مثلا خود مثلا مدیریت رو اینا در بالا بهشون انگیزه انگیز بدن که ما میتونیم خودمون تولید بهتر میتونن. نه از سه تا چهار نمره پایین رو ما بهش میدیم. مثلا یک بهش بدیم یا دو بدیم یک بهش میدیم، ها؟ جه. خب سیستم‌های انگیزشی به عنوان یک استراتژی چه تاثیر و فرصتی به نام هش رقابت داره؟ تاثیر بالایی داره، آه؟ نه خیلی بالا ولی مثلا از سه تا چهار بخورم نمره بدیم مثلا نمره سه بهش میدیم، درسته؟ جه. نمره سه بهش میدیم سیستمهای انگیزشی رو کالا و خدمات جایگزین که توسط دا وسط داره ارائه میشه چه تأثیری میذاره؟ فاهم. تأثیر آنچنان تأثیر پایین یک یا صف حتی صف موانع ورود به بازار چه تأثیری میذاره؟ اینم باز؟ صف یا یک، حالا من یک دادم آه؟ ببین ما الان اه این قسمت انجام او رو انجام دادیم درسته اه. بریم سراغ استراتژی بعدی من اینجا رو مجبورم چیز کنم آه... هایت کنم ها هایدش کنم که بریم سراغ بعدی استیاس درسته افزایش کیفیت به عنوان یک استراتژی افزایش کیفیت به عنوان یک استراتژی چه تأثیری روی تحریم امور فرصت میذاره؟ این تحریمی وجود داره متوجه و سازندگان داهه و خودشون نشون بدن تأثیر میذاره با این سیستم سه میدیم ها ببین دوباره سه ساعت دو دهم ده شد شد چقدر 6 دهم ده افزایش کیفیت و حجم رقابت چه تأثیری میذاره؟ تأثیر بالایی میذاره ها شاید مثلا تاثیر چهار یا خدا بزرگترش هم کار. خوبه؟ نمیدوش. کالا یا خدمات جایگزین. افسایش کیفیت و کالا و خدمات جایگزین موانعی یک فرصت. وی کالا و خدمات جایگزین فرصت بود دیگه تو بیزینس ما. این یعنی اصلا نداشتیم این قاضیات تاثیر را. کیفیت تاثیر میذاره تاثیری؟ نمیذاره سفر. ها؟ امیدوش. یا نمگوانه بوده بازار چه تاثیری میذاره؟ ها؟ مگوانه بوده بازار هیچ؟ آ نمی‌ذاره دیگه چون اگر که کمتر باشیم دیگه متوافقیم. مثل همون خدمت جایگزینی دیوست. باشه. باشه ولی یه آخر مخفونم اون خوبه. حالا. به من و دعوی تو بازار وجود داره کیفیتش را در رو داره رفتهش میده. رقابت یه خیلی سخت میتونه بارد هوذیر رقابت. قبول دارم تحسین میذارم یه خیلی مثلا ما عددی یک پشت بدیم، ها؟ عددی یک پشت بدیم خب مدیریت ارتباط با تعمیم کنندگان به عنوان یک استراتژی رو تحرمان چه فرصته تحصیل میذاره خیلی تحصیل میذاره، ها؟ درسته؟ ها عدد چهار رو حجم نقابت، بالا، عدد چهار رو کالا و خدمات جایگزین نه تاثیر آنچنانی نمیذاره عدد یک یا مبانی ورود به بازار عدد دو بهش بدیم ها ترویج برند استراتژی ترویج برند تو تقریبا چه تأثیری میذاره تاثیر بالایی میذاره عدد چهار رو حجم رقابت چقدر چهار کالا و خدمات جایگزین تاثیر نمیذاره 0 مبانی ورود بازار عدد چهار، خیلی تاثیر میذاره یا عدد سب. متوجه هستید ببین سراغ استراتژی بعدی دوباره اینو هایدش کنیم خب استراتژی بعدی چی بود عکس وام ها ها ببینید تو تحت عنوان چه استراتژی اینا بود WWO ها سه بام به عنوان یک استراتژی، درسته؟ رو تحریم چه, فرص... چه روی فرصتی برای تحریم چه تأثیر میذاره؟ میذاره، تأثیر میذاره. اگه باام درست بخوایم بگیم چرا؟ چون ما میتونیم مدیریت نقدینگی داشته باشیم، توزیع زیب توسعه توزیع از اثر تا چهار نمره سه مثلا بهش می‌دیم. رو حجم رقابت تأثیر می‌ذاره. نمره سه بهش می‌دیم. روی کالا و خدمات جایگزین سف، این هم صرف. رو موانع ورود به بازار. تاثیری نمیذاره. در واقع اینجوری یه چیزی مثلا میشه بگی قانونا کیو اس پی ها همونقدر داریم اینکه آخرشم هست آخر ثوبت هم هست نجیگیری کلی بکنیم اینکه چقدر مهمه ما چی رو بنویسیم. کجا منظرات ستون یا نه سقف؟ هم فرصتا یا هر چیزی که خیلی اهمیت داره. شما اصلا همونجا بنویسیم که دقیقاً ببین شما اگر ثوا تو اشتباه انجام بده تو آخر اشتباهه. درسته؟ تو آخر اشتباه رفت. استراتژی‌ها تا اشتباه تو توز، تو ماتریس توز، مثلا اخذ اینا تو هر اشتباه به خاطر همینه که حالا من در ادامه توضیح میدم روش سوات روش سختیه. روش آسولی نیست. روش فوق‌العاده سختیه. چون شما خیلی وابسته است بنید به تحلیل فرد سوات خیلی وابسته است به تحلیل فعت. بقول معروف مدل خطی نیست، خیلی مدل غیر خطیه. خیلی وابسته است. خب ادامه میدیم حالا متدهای دیگه‌ام ببینیم جوره دستتون میاد. دانش سازمانی به عنوان یک استراتژی رو تحلیلات چه تأثیری میذاره؟ تأثیر, می تأثیر بالایی میذاره. چهار روی حجم رقابت؟ چهار روی کالا و خدمات جایگزین؟ تاثیر تو صنعت ما خب کالا و خدمات جایگزین فرصت شانس وجود نداره. خب پس اینا مثلا عدد 0 بهش میدیم یا عدد یک بهش میدیم. موانع ورود به بازار، عدد 3، تأثیری بالایی میذاره. استراتژی بروون سپاری رو تحریم چه تأثیری میذره آ؟ تأثیر میذره واسه چرا سفت آچار چهار چه تأثیر میذره چیز سرعت تو رو اتام میتونیم بری جلو با ب... چه؟ یا با بروون سپاری اگه سیستم درسته بروون سپاری نشده باشه از سفت آچار مثلا نمره سه بهش میدی تو حجم رقابت چه تأثیری میذره تأثیر زیادی رو حجم رقابت بس حدد دو بهش میدیم رو کالا و خدمات جای بازی این هم تأثیر آنچنانی نمیذاره یک یا موانع ورود به بازار نمیده. یک تجهیزات تحریزات روی تحریمات چه تأثیری میذاره؟ خیلی زیاده آه؟ توصیح به قطعه این توصیح تحریزات تو که تقریمات بتونی دو رو زنید چهار روی حجم رقابت چهار رو کالا و خدمات جایگوزی اینم یک موانع ورود به بازارم تاثیر بسیار زیادی روی این فرصت میذاره متوجه هستید چه شما هرچقدر چقدر توسعه پیدا کنید و قوی تر باشید در... سختر کسی میتونه بیاد با شما رقابت بکنه موانه برای درسته مثل راکی چهار بود راکی بکسورره رفت تو کوه دویید و خودش رو کرد کرده که میخواد بکس بازی کنه گفتم استراتژی جدایی رو بخونید که نتونه کسی باش رقابت بکنه این واقعیت تو رقابت هم به همین صورته شما هر چقدر خودت بکنی رقیبت که سختتر میتونه با تو بیاد و به قول معروف مبارزه بکنه خب پس اینم هم ما عدد چهار بهش میدیم خیلی خیلی کنم من اینا رو با که سال داشتم جان آسف این وقتی که نقطه برگوان ها رفایداری پرسان این چجوریه گیش بخشین یه کنم ها؟ نمیدونم. نمیدونم. شما آیتی نخوندیم کار چجوریه؟ این آیتی ها سوال مثلا داشت سوال میکنه مثلا اکسل میگه ما اکسل نخوندیم مثلا مثل دکتری میمونه که بلند نماشه آمپول بزنه نه اون. یا بلند بزنه در از اینه؟ مثلا بلند هم نیستن کله شالوده ای آیتی رو زیر سوال که در راست آی من پیش هر ورژنی هم که رو دکتر ایمونه کامپول بلنده بزن هرکر درست چرا دقیقا هم روز شما گیده موتوشی شده سه ساست این روز برود اینا شماست آقا من صحاتیت یک برچو میدهیم من نیست قدت بالای مشتری باشه من متوجه نشم شما گفتیم که استراتیجی یک پاش سازی روبه عقب به جلو استفاده میشه یه بار که با کدوم استراتژی روش صحبت داره میکنه؟ استراتژی یک پاش سازی روبه عقب ما اینجا که نداشتیم که روبه عقب؟ تو مثال ها گفتیم آها خب خب خب بگو بگو چرا باید از یک پاشه سازی روبه عقب استفاده کنیم؟ سیستمای انگیزشی ر برم تو ماتریس توز نه نه نه اینجا نیست واسه اسمون وفاداری باشه اسمون وفادلی باشه قدرت بالای مشتری هم تهدید باشه چرا یک کاشه؟ میدم بر اساس این توز داری صحبت میکنی یک ما؟ نه سواله خب بگو حالا، حالا دوبار سامتون من خب می بدونم چرا وفادلی پرسنان اگر نخب قوامون باشه قوت باشه بله و تویتمونم قدرت بالای مشتری هم باشه چرا یک کاش استازی رو به ع اسمون وفاداری پرسنل وفاداری؟ خب تی هم قدرت بالای مشتریه تی قدرته؟ بالای مشتریه چانه زنیه؟ بل. بالای مشتریان چرا ستی مون یک پارچه سازیه رو برقه هست؟ ببینید ستیه اینجا خب خیلی چیزا میتونه من گفتم دیگه یک من قاعدتا سیستم انگیزشی گفتم سیستم انگیزشی درسته؟ استیلر من سیستم قاعدتاً سیستم انگیزشی گفتم ولی سیستم انگیزشی خودش یک پارچه سازی عمودی رو برداشته چرا <تصفح> چون سیستم انگیزشی هر چیزی که باعث توسعه سازمانت بشه میشه یک پارچه سازی هر چیزی که باعث, باعث توسعه سازمانت بشه یک پروسهگه حالا سیستم انگیزش هم باعث توسعه سازمانت میشه دیگه زیر پروسهگه روی این حسابم انگیزشی آره خب بریم سراغ کیو اس پی پس منتظر شه دوستان داستان چی شد کیو اس پیمو ببین کیو اس ما به ترتیب فرصت ها استراتژی ها تاثیری که به فرصت ها میذاره حالا این بعدی تهدیدات درسته رسوخ در بازار به با عنوان یک استراتژی ها رسوخ در بازار به با عنوان یک استراتژی چه تأثیری روی مشتریان میذاره به عنوان تهدید تهدید ما، مشتریان قدرت چان زنیشون بالاست خب و <تصفيق> بذارین فریز کنم خیلی تهدید ما مشتریه درسته؟ نه رسوخ در بازار به با عنوان یک استراتژی چه تأثیری روی تهدید میذاره؟ از تا چهار میخوانم نمره بدیم ما نمره دو رو دادیم به ضبط در هفته شده یک و چهاردام یا رسوخ در بازار رو تامین کنندگان به عنوان یک چه تحصیلی میذاره؟ آه؟ خیلی نه خیلی نه، مثلا نمره یک رو بهش دادیم درسته؟ دوستان به همین صورت برای نقاط قوت، نقاط ضعف هم ما جلو میریم مثلا، فرض به فهمیدون نقاط قوت استراتژی رو بازار، به با عنوان یک استراتژی خب؟ یه قوتی داریم به نام؟ دانش, دانش, دانش, دانش, دانش سازمانی دانش سازمانی به عنوان یک نقطه قوت در پیاده سازی این استراتژی چه تأثیری میذاره؟ خیلی بالا، با. عدد چهار یا برند ما روی رسوخ در بازار چه تحصیلی نیزداره؟ عدد چهار بهش لیم درسته؟ یا مثلا، وفاداری پرسونال در اسطنج رسوخ در بازار ما عدد دو داریم ولی مثلا، این رو برای سه ها؟ دو خیلی کمه سه مثلا یا سیستم فروش و بازاریابی ممانی یه نقطه قوت روی رسوخ در بازار چه؟ عدد چهار خب. پرسنل. اگه به پرسنگل خط تولید باشن، خیلی مشتری چرا دیگه ببینید، کیفیته کیفیت شما منجبه روسوخ در بازار میشه کیفیت شماست که منجبه میشه مشتری به شما اعتماد پیدا کنه اونا تاثیر تحصیل داره اطمال ما زمانی که میخوایم ضربه بخوریم از داخل خط ضربه نخونه و بریم سراغ نقاط زف نقطینگی به نقطه 1.0 درسته؟ در رسوخ در بازار به منبار یه چه تاثیری میذاره. ما عدد 1 دادیم. تاثیر زیادی نمیذاره. سیستم مکانیک چه تأثیری به عنوان نقطه صفر، این که سلسله مراتب زیاده. رسوخ در بازار چه تأثیری میذاره؟ ما چهار 4 بهش مینام. زیادی, زیادی میذاره. سیستم سهامداری آن چنانی نمیذاره. تنش‌ها چه تأثیری میذاره؟ ما دادیم. دوستان برای هر استراتژی شما تحلیل یک توتال اتراکتیونس اسکور رو باید پر کنید ببین پس باز من یه چیزا دارم تکرار می کنم. به خاطر این بود که ما گفتیم در سوال شما حدوداً چهار یا پنج آیتم برای نقاط قوت ضعف فرصت به تحدید داشته باشید هر چقدر این عوامل زیاد میشد متوجه هستید به همون نسبت توزه هم زیاد میشه های توسعه و اینجا تو کیو اسپیر که بخوای پر بکنید داستان هایی داری چات اطلاعتون، ما همین الان توزمون چند استراتژی بود هشت نه تا استراتژی درسته همین الان کیو اس پی ام اشو بخوام یک ساعت تا یک ساعت میبره من به خاطر این سمپلی دارم نشونتون میدم که چجوری پر میشه خب سخته دیگه دونه, دونه بیا استراتژی ببینن نقاط ضعف و قوت فرصت تهدید چه تأثیری میذاره خب حالا بحثی که اینجا وجود داره بحثی که وجود داره استراتژی چیه حساب میکنیم؟ دوستان جمع نمره رو حساب میکنیم ها جمع نمره چی میشه توتال اٹرکتیونس اسکور درسته یعنی برای هر استراتژی ما میان جمع نمره یعنی توتال اٹرکتیونس اسکور رو محاسبه میکنیم دقت کنید در انتهای کیو اس جمع کل امتیاز استراتژی نوشته شده که مثلا برای رسوخ در بازار 10.2 ده دهمه ده مجموع تمام ای اسکور هاست خب؟ این توتال اتاکنس اسکوراست خب اینا هر اونایی که اینجا شما به دست آوردی درسته جمع نهاییش میاد در پایین میشینه خب سامیشن جمع کل اون توتال اتاکنس اسکوراتونه که 10.2 ده دهمه برای هر استراتژی ما باید جمع کل امتیاز استراتژی رو محاسبه کنیم خب، مثلا یک بار و پذیری شده ده و دو هم به همین هم بیریم تا آخر نتیجه گیری به چی من میخوام برسم. استراتژی که امتیازش بالاتره، اولویت بالاتری در سطح سازمان برای پیاده سازی داره استراتژی که اولویتش، مذارب میخوام، امتیازش پایین اولویت پایینتری رو داره خب؟ و همه های این اولدیتفندی امتیازات استراتژی رو برای ما انجام میده من یک مثال دیگه ای براتون بزنم، دقت بکنید ما تو سازمان خودمون، خب اومدیم و بحث، این مثال ها رو خوندید دیگه آره؟ من براتون تو فولدر گذاشتم. این استراتژیک پلنینگ شرکت ماست. درسته؟ ویرا. خب. اا قطع خط تولیده، حالا یه سری عکس و اینا، ویژن استیتمنتمون خب. برای کوپراد استراتژی، اول اومد نقاط ضعف، درسته؟ قوت، تهدیدات و فرصت‌ها رو مشخص کردیم. بعد گذاشتیم در ماتریس همین تحلیل سوات خب. این تعلیل سواته. بعد بردیم در ماتریس مکنسی یا ماتریس جی ای که این در حقیقت هم وضعیت و وضعیت صباته ستبیلیتیه خب؟ بعد بردیم در ماتریس توز, توز. خب؟ و بر اساس نقاط قبط زن این استراتژی ها رو اتخاذ کردیم بعد بردیم در ماتریس <تصفح> کیو اسپیه ما رو دیده نمیشه چون خیلی ماتریس اینجا بزرگه کپی بیس کردم، بل خروجه ماتریس میخواستم بتون نشون بدم ما 19 تا استراتژی تو ماتریس رو نوشته بودیم تو تو کیو بردیم و اولویت بندیش اینجوری شد برنامه ریزی جدول کل انتز استراتژی 8 تا پس از اول... ريسورت کردیم دیگه 19 تا رو دو عقد قرارداد باز و مشتریان استراتژیک 7 تا 12 صدم خب یا سه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان 7 سه 300 و همه تا آخر مثلا استراتژی بین الملل چرخه کله امتیاز استراتژی 68700 پس بین 19 تا استراتژی اولین استراتژی که ما باید روش متمرکز بشیم بحث برنامه ریزی چیه؟ ریزی دوومه چیه باز و مشتریان سه‌ومه چیه مدیریت ارتباط با این چه نقش QSP پس عمله QSP اولویت بندی استراتژی های طزه نکته بسیار مهم نوشتن QSP در صدر استراتژیک اجباری نیست میتونی نه ضروری اجباری نیست چون اگر نخواهیم اولویت بندی کنه یعنی اولویت بندی برات مهم نباشه اجباری نیست نوشتن QSP در صدر استراتژیک یعنی سن 200 پس ازامی نیست. الزامی نیست. اگه با... نه بندی کن ولی واقعیت اهمشم اصلا الزامی نیستش. ولی ما میگیم یعنی که آقا شما تو ماتریس توز یه اولویت بندی کن. اوکی؟ چه زمانی باید اولویت بندی کنیم؟ بعد زمانی که برای مهم باشه. ممکنه یه شرکتی ممکنه یه شرکتی میگه آقا مثلا هیئت مدیره یا با هم برو جلو. خب، چیزی اولویت بندی نخواه. برای اگه تو مشکل نهدینگی داشته باشی مشکل بودجهی داشته باشی باید اولویت بندی کنی یا موقع اینطور دیگه به تو میکنه اوکی تا اون زر تا استراتیجی برای من نوشی کدومش اولویت بالاتر داره بیا برایش با این باشه اول بری سراغ کدومه اون وقت بری سراغ کیو اس بیان زمانی هم ممکنه آره آره متبطه شوید داستان ها خیلی خوب ابزار افر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خب ابزار اول برای در برنامه‌ریزی استراتژی در سطح کلان شرکتی پس ابزار سواد بود که سواد در 4 مرحله سواد جی‌توز و کیو اس بریم سراغ ابزار دوم. ابزار اسپیس مخفف استراتیجی پوزیشن اند اکشن اوالویشن وقتی میگم؟ سپیس یعنی فضا داستان این شبه ختمت رو توضیم دام استراتیجی پوزیشن اند اکشن اوالویشن استراتژی کلان شرکتی اولین ابزارمون سوات دومین ابزارمون اسپیسه ما چهار ابزار به شما میدیم ان سوالات کیو توزا کیو اس غیر خطی بودن یعنی نظر نظر افراد آدماتش است. ولی اسپیسی از این بعد خطیه خطیه از این بعد اصلا خطیه. خطیه یه داستان اینجا وجود داره دوستان چرا ما از ابزارهای مختلف برای نوشتن برنامه‌ریزی کلان شرکتی استفاده میکنیم گفتم از همه جواب نگرفتیم خب، ببین هر ابزاری برای خودش نقاط ضعفی داره. خب، ما در برنامه‌ریزی کانون شرکتی رو انجام میدیم. اگر فقط از یک ابزار میرفتیم جلو، انحرافات زیاد میشه. شما میخوایی تصمیم گیری برای سازمان دستگاه بخری یا نخری؟ این تصمیم گیری ای با یه ابزار بری بالا ریسکت افزایش پیدا میکنی یا به عمانتی انحرافاتت افزایش پیدا میکنی آره، ابزارهای مختلف میری جلو ریسکت کم کن کنی انحرافاتت کم کن. داستانی که الان وجود داره، سوال اشکالات و سؤالتو به من بگی چی تخمودن میشه تخمودن تو انتخال و اینکه نظرهای مختلف مرمانه های شخصی هنگی کس با شخص دیگه این داره تحمیل نه. های فردی درش تحمیل فردی داره تحمیل فردی توش خیلی دخواهد داره دومین اشکالش دومین اشکالش که خیلی مهمه یعنی اون تر اشکال اوله جان؟ انتخاب اون عوامل انتخاب اونم عوامل خیلی زیاده موقعیت بی یا زر آیتی های جلیکر از این به شناب داردی اصلا یک تدالگلی که من و اوز کرمونم مدیری از بسرم نمیمون مثلا با آیتی میگو دا خونه من نمیم بگو آفیس رو کار نمیم میگو من نمیم میگو این انتی ویرس رو کامپیتر من نس کنم من نمیم دا خب بعد بگیم با پس تو چی میدونی میگه نه اینا چیزی نیستش <تصفيق> خب بگیم عوامل محیط بیرونی شما یازده عامله درست سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی جغرافیا، جمعیت شناسی مشتری تحمیم کننده، موانع ورود به بازار رقابت، کالا و خدمات جایگزین یازده عامله عوامل محیط داخل چند عامله؟ محیط خیلی نه خیلی حالا ما عمر بر اساس روبیز گفتیم آقا تو شش قسمت تقسیم بندیش کنم فعالیت و بازار یابی و مالی ولی زیادی حالا شما بین تمام این عوامل میخاید تا نقطه قوت انتخاب کنه، چهارتا تا نقطه ضعف، چهارتا تا فرصت، چهار تا تهدید سخت میکنه کارو براش. یا به عبارت انحرافاتت میره بالا، یفزایش پیدا میکنه. در خوب هست یا نه با هر سوتی که باعث باشه بمونه یک ابزار مد داشته تو به تنهایی نه ابزارهای دیگر مد در اینوانش بیاد وای بچه‌ها من یه نکته بگم هر ابزارم اشکالات خاصه خودش رو داره متوجه بخاطر اینکه ما ابزارهای رو کنار هم دیگه می‌ذاریم که همدیگه رو کامپلممنت کنن مدل نویشان سند استراتژیکو دقیقاً ما سعی که افراد مختلف نقاط ضعف مختلفی دارن توی گروه قرار می‌گیرن که همدیگر رو تکمیل بکنن این همینه ما ابزاره مختلفو میبینین که رو بتونن تکمیل بکنن حالا بیم سراغ ابزار اسپیس استراتژیک، پوزیشن اند اکشن اوالویشن اسپیس میگه محیط بیرونی من دو عامل محیط داخلی من دو عامل خوب خیلی خلاصه جامع و مفید میگه آقا در محیط بیرونی دو آمل مهم مهمه محیط داخلی هم دو مهمه حالا من از شما سوال میکنم حالا من از شما سوال میکنم خب؟ در محیط داخلی خب؟ و یکم محیط خارجی حالا من از شما سوال میکنم شما به من بگید که در محیط داخلی چه عواملیه که واقعا اهمیت داره یعنی اگه شما دو عامل رو در محیط داخلی بخواید انتخاب بکنید که خیلی تحصیل روی سند استراتیجی که شما میذاره چه عواملیه نیروی برند نیروی انسانی مدیری مدیریت خواه؟ خب؟ مدیریت خواهیم استرس میگه دو عامل در محیط داخلی فوق العاده مهمه که باید بهش توجه کرد دو عامل یک عامل مالی و من شب نه این مالی دو مزیت رقابتی دوستان، یعنی هم تمایز مالیه. حالا ها شما بگیم نیروی انسانی این اومدی اینجوری تحصیل‌بندی کرد. گفته محیط داخلی ما دو قسمته، مالی و محیط رقابتی. حالا هرون چیزی که شما می‌گین بنویم تو محیط رقابتی باشه. مثل نیروی انسانی، برند، تمایز اینا. اوماله خیلی خلاصه گفته. ولی داستان اینجا وجود داره. مثلا مالی خیلی مهمه. چوب بدون بحث مالی نیمتونه بگه آقا مثلا یه شرکت مثلا یه شرکت مشکل مالی داشته باشه میگو نه کن و سند استراتژی و توسع محصول و توسع تا چیزات شرکت دارو رو آره واقعیتیه یه واقعیتیه واقعیت و جالب اینه که دوستان من تو محیط کارم کمترین زمان رو تو نوشتن سند استراتژیک میذارم و اصلا من نمونه استراتژیک پلانیگو که به شما نشده هم خدا ننمشتن اینا, اینا دوستان چرا تو صبح که من میرم ذهنم درگیر موارد مالی نقدینگیه. سرمون بالا چکه، بحرانه. دا دا دا بر بر بر بر بر برو تو، آخه مدیر نمی‌رسه بحث برنامه‌ریزی استراتژیک. بخاطر همی که ما میگیم مالی به عنوان یه عامل درون سازمانی و شدت نقطه تاثیر می‌ذاره رو بحث برنامه ریزی استراتژیک. درسته؟ بحث فیش یه محیط خارجی به دو تا قسمت تقسیم میشه، به دو تا قسمت نه جذابیت سانحه خو صبرت میکنی خوش بگم خوش میگم خوش میگم خوش میگم من حساتی در من خیلی بگی قیافه. معلومه که این هایتی تو تساغی عذیب کرده باید چی؟ خودش بیلگیت داریگه خب، <تصفيق> موند خالجی رو اسپیس میگه به دو آمند تقسیم بندی میشه جذابیت سنعت صبات محیطی جالبه میگه اگه تو تولید کالا تو سنعت لباس داری یا تولید کالا تو سنعت خود داری خب این دوتا با هم فرق میکنه دیگه اینکه کدوم صنعت جذابیت بالاتری داشته باشه در سند استراتژیک شما و برنامه استراتژیک شما تقصیر گذاره خب صبات محیطی تو تولید کالا و خدمات در ایران داره یا در کانادا داره؟ موحد تاثیر میذاره رو سازماناتو، رو ریزی استراتژیک سازماناتو تاثیر میذاره. درست جانا؟ آ در ایران نرخ تورم مدار مثلا رو به کاهش یا فلکچوئیت بالا پایین می‌شه. همین در ریزی استراتژیک سازمان شما تاثیر میذاره دیگه. درست یا نه؟ یا مثلا فرض بفرمایید من رفیق علیمه به شما گفتم یا نه در شرکته بل کانادا کار میکنه این هم امجراسیه من خب مدیر فروشه یکی از مدیرای فروشه ها دیگه بخشی سال گذشته خودش رو با خانمش و بچش شو یک هفته فرستا در یونان همش هم پای شرکت چرا چون ایشون 20000 دلار فروش داشت خب 20000 دلار این چه چرت و پوله ما شش هفته پنهون ما رقم بالایی نیست ولی اونجا وقتی تو یه فروشی رو داشته باشی از وقت شنبه تا میکنن میدونی چرا چون فروش در کانادا فوق العاده سخته چرا چون حجم رقابت سنگینه چرا چون ها خیلی جدیه اصلا استانداردها شوخی نمیکنه با کسی خب و به خاطر همینه که ما میگیم محیط تاثیرگذار در موفقیت ار در استراتژی ار سازمانی اوکی خب، بریم وارده بحث ماتریس اسپیس بشیم گرفتی پس ببین ماتریس اسپیس موارد مالی، مذیعت رقابتی، جذابیت و صحبات محیطی یعنی کلن به چهار عامل تقسیم کرد نه ایمد مثل صحب 11 آمل محیط بیرونی یا درانی هم که اله ماشالله با قول شما بی نهایت. خب به چهار عامل تقسیم کرد همین چهار آمله؟ همین چهار آمله صحبت محیطشون چیه؟ جان؟ این توضیح میدم صبات محیطی الان در ایران که تو داریم تولید کارا و خدمات میکنی محیطت ثابته؟ نه صبات نداره ما بعدا تو زبان آمیانه میگیم ایران صبات نداره دیگه ها؟ نه. مثلا میگیم امریکا صبات داره ولی ایران صبات نداره همیشه صبات محیطی الان تو تو شیرینی هستی من تو نفتم تو تو صنعت شیرینی هستی من تو سرعت نفتم کدوم سرعت جذابیتش بالاتره؟ ما وقتی جذابیت سرعت اینو یادتون باشه جذابیت یعنی چی؟ بلیت بلیت منظورت, منظورت جذابیت ببینیم تو مدیریت، تو کسفاکار جذابیت یه یعنی معنی میده جذابیت یعنی سود بله این به معنی که اون سرعت خوشگه یا سود حالا سود در صنعت شیرینی بالاتر یا صنعت نفت هر کدوم که بالاتر باشه، جذابیتش بالاتر هر کدومش که بالاتر باشه، جذابیتش بالاتره دیگه ما ها پروژه رو بعضا هزینه میکنیم، صد ملیه تومن، میفروشیم دو میلیا تومن نکه بخوام گرم فروشی بکنیم و ما دانشمون داریم میفروشیم قیمت آره از خارجی ما فروش چهار میلیارد میفروشی ما دو میلیارد میفروشی ما سمت چهار هستیم که باز مشکل از تو, سو سو. تو فروش عجیبی پول نمیاد تو سیستم. سایی زیاده تو نمیاد. پول زرقه. بله فاکتور چهاری و یه سال تو نکشیدی چون تو سود زیاده نمیدن. آه. نه, نه. نمی ولی بابا مشکل نه به فروشه تو نه مینگی به فروش تو تو فروختی. فاکتور کردی دا دا باید پول وارد سیستمت نمیشه تا پول وارد بشه بودا که چند زنیشون با ناس دو درستگاه نه تا پول وارد بشه اینقدر سراخ هستش که خب بریم وارده بستیل سپیس بشیم گرفتی نه؟ این سنده رو چند وقت بار تنظیم کرد برای سازمان چون من الان تاریخ این فایلتونی دارم 2013 بود از اون موقع تا الان که دو سال نه ما هر ماه بار بی باعث میکنم نه نمیره دیگه چیز نیست خب یاد بکنید یه معلیفه ایکس و معلیفه وای درسته؟ اکس و وای این میشه عکس مثبت. درسته؟ این میشه ایکس منفی این میشه وای مثبت. این مصابیس با وای منفی گرفت در رو ایکس مثبت ایکس منفی وای مثبت وای منفی خب ضرب مثبت ما گفتیم اساس چهار عامل دیگه صبات محیطی رو میذاریم ایکس مثبت از اندخوام، جذابیت سنعت جذابیت سنعت رو میذاریم اکس مزیت مذیعت رو میذاریم اکس منفی خب وای مصفت میذاریم مالی ماه منفیمون چی میشه؟ صحبات محیطی اسپیس ارز کردم اصلا اسمش هم مشخصه یعنی فضا چهار آمه که ما مد نظر نامیم مثل مالی صحبات محیط جذابیت صداد، مزید رقبتی روی این معلیفه میزهیم تقسیم بلیه معلیفه رو یادداشت کنید یک دو سه چهار پنج منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار منفی پنج منفی شش درسته؟ وای مصبت من یک دو سه چهار پنج شش وای منفی من منفی یک منفی دو منفی سه، منفی چهار، منفی پنج و منفی شش شکلیستی که ما در اسپیس، مد نظرمونه شیش آیتمیه یعنی چی؟ یعنی اگه جذابیت سنت خیلی خوب باشه عدد بالاتر رو میگیری، یعنی از یک تا شیش شیش میگیره اگه مزیده رقابتی خیلی قوی باشه تو سازمانه منفی یک میگیره، نه منفی 6 چون منفی شیش, شیش کوشکتر از منفی یکی دید، درست یا نه؟ یا درست مالی، اگه توانی مالی تو سازمان خیلی بالا باشه اردانه بالا از یک تا 6 میگیره خب؟ اگر صوبات محیطی مشکل داشته باشه منفی 6 میگیره اگه قبی باشه منفی یک میگیره حالا نکته ما باید مشخص بکنیم بر اساس اسپیس که سازمانمون تو چه محیطی میفته؟ درست نیم؟ محیط یک تو این محیطی میفته؟ تو این محیط میافته؟ تو این محیط میافته؟ یا تو این محیط میافته؟ اگه تو این محیط بیفته یعنی سازمانش وضعیتش اینجا باشه. خب مثلا این چه محیطیه؟ محیط خوب آه آه اینجا استراتژی استراتژی رشده. درسته؟ اگه اگه وضعیتت اینجا باشه، استراتژی استراتژی رشده. خب اگر اینجا بیفته استراتوژی رقابتی خب؟ اگر اینجا بیفته استراتوژی های محافظه کارانه یا صوبات هم بهش میگن درسته؟ اگر اینجا بیفته استراتوژی های تدافن. ما تو اسپیس میخواییم مشخص کنیم شرکتمون کجا میفته وضعیتش کجاست گرفتی پوینتو حالا بریم وارد اسپیس بشیم زیاد سخت نیست نه؟ از خیلی آسان تره باشه اهمیتش بیشتره الان میرسیم بهش آره آره مسلمه تو مزیت هر چقدر اینورتر باشه بالاتر هر چی من اینورتر باشه بالاتر دیگه درسته اینکه الان یه هر مهم‌تر باشه نمره چند تری بدیم یا بیشتر بدیم یعنی چی آقا تبار وانیت اگه ضعیف‌تر عدد پایین‌تر میگیره اگه بالاتر عدد بالاتر میگیره یعنی من جذابیت و ثقل هر چقدر اینورترش ثقل حساب تاره مزیت رقابتی هر چقدر اینورتر باشه یعنی بالاتر درسته حال علمتون توضیح میدم خب دقت بکنید خیلی جالبه دقت کنید عرض کردم خدمتتون که در اسپیس ما 4 عامل برامون مهمه درسته مالی مزیت رقابتی ثبات محیط حسابداری سند در هر عامل یه چکلیستی وجود داره یه چک لیست استاندارد خب این مثلا بعد نقاط مالیه درسته یا بعدی مزیت رقابتیه چکلیست دوم چکلیست سه بوم جذابیت صنعته چکلیست چهار روم صبات محیطیه دوستان با چهار چکلیست که هر چکلیست هم حد اکثر پنج ششتا سوال داره شما وضعیت رو تو میتونی تحلیل کنید ببینید وضعیت سازمانت اینجاست، اینجاست، اینجاست یا اینجاست چکلیست شماره یک چکلیست مالی درسته؟ دوستان، شرط مالی چند سال داره؟ هفت سال. ها؟ با این 7 تا سال تو اصلا می‌خوره به آقا وضعیت مالی سازمان چجوریه؟ خوبه یا بده؟ با یه سوال با یه چکلیست هفت ساله شما بگید وضعیت مالی سازمانت خوبه یا بده. بریم چه داستانش؟ سال اول بازگشت سرمایه. مالی خوند دیگه مالی حساب داریم. بازگشت سرمایه چی؟ یعنی اولی سوال که تو چک مطرح میشه بازگشت سرمایه است. یعنی عدد 1 تا 6 دادیم بهش. متوجهی؟ اگه عدد یک باشه یعنی بازگشت سرمایه شما پایینه. اگه عدد 6 بگیره یعنی بازگشت سرمایه شما بالاست. درسته؟ بازگشت سرمایه یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که سرمایه که کردیم، با این کاری که رو انجام چقدر چه سوالی میتونه میگه بازگشت سرمایه شرکت بالاست؟ یه جنسی, جنسی رو فروختی؟ یه جنسی رو فروختی؟ موقع تونسی بولش رو بگیری کامل؟ نه نه خیلی ماشی بگیری زمان موشن هست نه بازگشت سرده یه فرمول داشت یه خطی بود که یادم علمون رد میشد یعنی بازگاهش سرمایه انجام شده نه آه. حد برسه این با پاک کرد پاک آه، شرکت ما مثلا الان بخوایم بفروشیم کل کل یه جا بخوایم بفروشیم کل سرمایه شرکت ما هست 10 میلیارد تومان مثلا کل بخوام بفروش خب میلیارد درسته 10 میلیارد بدی تو بانک بذاری چقدر سود بانک سالانه بهت میده همه مردن دوام بگی چرا 23 یعنی یعنی return آن بازارت نرخ بانکی؟ فرشتگان 29 درصد حالا، حالا فرشتگان 29 درصد حالا ما یعنی فرشتگان بذاره که نرمه قمعا تو اینجور تحلیل ها درسته دارم بگید فرشتگان نه سامنال حجاش خیلی چیزتر هست فرشتگان آقای استاندار برن نه سامان اوکیه مشکل نداره تایید شده سامنال حاجش اوکیه بابا مانه و چنون رو و تو داره خب؟ دقیقا، حالا ما نمخ بانکی 22% در نظر میدیم نه 29% درست. استاندارد بانک مرکزی چقدر میشه؟ ده ملیار چقدر میشه Mindrik. دو میلیارد دیویسمینه. درسته. اگه ده میلیارد من من تو بانک بزنم آخر سال به من دو میلیارد دیویسمینه تو از سودو بانکی میده. از ساله دیگه. خب شرکت من شرکت اف مثلا یا شرکت X که ده میلیارده. خب سود خالصش و سود خالصش چقدر باشه؟ حداقل دو تومن باشه عقلش. عقلش. عقلش. اگر یک میلیارد باشه سهامدار قاطی میکنه آمپر میچسکونه میگه ما من کل سرمایه رو تو بانک بذارم. دو میلیارد به من میده مثلا فرص که یعنی یک میلیارد دو پون سود داده دارم میگم این ما بهش میگیم return of investment بازگشت سرمایه گرفتی بازگشت سرمایه چی شد؟ حالا فرض کن سود خالص شرکتیه مثلا ما سه میلیارد تومنه درسته؟ فرض کن آه؟ سه ملیار تومن چند درصد دو میلیارد و دیویس ملیون تومنه؟ چند درصد بالاتره؟ سد پش درصد دوم مدت سه میلیارد تحسیم را دوم میلیارد چند درصد میشه؟ چند میشه سیصد سیصد میشه تقسیم بره دو میلیارد دیویست دو میلیاردو دی چقدر میشه؟ در نتیجه خب در نتیجه ر او آی شما ریترن آف شما مساویست با یک مومه سی و شش. یعنی چی؟ یعنی درصد بالاتر از نرخ بانکی شما سود دادی باشید به, به سهاندار یعنی 36% درصد بارتر از نرخ بانکی به سهاندار سود داد آرائی متوجه شدید چیش ها؟ خیلی عملیاتی خد چی بود؟ گفتون برای خد بشون برای خد بشون نه یه داستانی بودش که داستان چه؟ خاصی... آره ما نمید صحبت میکنیم خاصی محاسبه کنیم که کی میشه که هرزش بولی بودش کی سود به دسته بردیم برای محصول در سود. درصد سود کی میشه بفهمیم که بیشتر از اون حد سود میاره انا ما اراہی حساب میکنم ببین بازگشت سرمایه اگه کم باشه کم یعنی چی کم‌تر درصدی سود می‌کنید آفرین بالا باشه یعنی بالاتر از خب اگه خیلی بالا باشه متوجه بازگشت سرمایه یک میگیره تا 6 میگیره خب شاخص بعدی نسبت بدهی به دارایی‌های خالص این شاخصو تو مالی حسابداری خوندید دیگه درسته نسبت به دهیای سازمان سازمان چقدر به احکاره خب هر چقدر بدهیش کمتر باشه عدد بالاتری رو میگیره هر بیشتر باشه عدد پایینتری رو میگیره هر چقدر بدهیش بیشتر باشه صنف سم... کم بیشتری بشتره هر چقدر کم کمتر باشه صنف بالاتری داره حالا ما اینجا داریم نسبت بدهی به دارایی خالص نامتعادل متعادل یعنی چی چه زمانی نسبت بدهی نامتعادله وقتی بیشتر از دارایی باشه نسبت بدهی یا نامتعادل چه زمانی نامتعادله چه زمانی متعادله یه موقع شما نمشه. یه موقع صحب. شرکت نگاه میکنی میگی چقدر بدهی کاری میگی من یه میلیارد تومان بدهی بعد یه سوالی میکنی که وقتی اون سوال پاسخش رو میگیری میگه اوکیه میلیارد بدهکاری چقدر طلب طلبکاری ببینی هر چقدر aşopa اگه شما یک میلیار تومان بدهکاری بعد دو میلیار تومان طلبکار باشی یکنگی میلیار تومان طلبکار باشی این ما میگیم وقت瞬ه بدهبییار متعادله و اگه یک میلیار تومان بدهکار بود، یک میلیارد تومان طلبکار بودی فاجعه است اگه یک میلیارد تومن بده کار بودی، 500 ملیار تومن طلب کار بودی، برشکستی گرفتی پونتو؟ حالا، نسبت بدهیم به دارای، خواهد، اگه نامتعادل باشه، نمره پایینتری رو میگیره اگه متعادل باشه، نمره بالاتری رو میگیره، درسته؟ شاخص شماره سه، نقدینگی نقدینگی در سازمان شما، اگر نامتوازن باشه یعنی کم باشه، عدد پایین اگه زیاد باشه عدد بالاتری رو میگیره شاخص بعدی سرمایه مورد نیاز در برابر سرمایه در دسترس سازمان شما برای اینکه رو جلو حرکت بکنه برای اینکه بتونه اصلا تو بیزینس موفق باشه بتونه جوابگوی نیاز مشتریان و زین باشه چه سرمایه‌ای داره و چه سرمایه باید داشته باشه دقیق کن یه موقع از سرمایه موجود سازمان شما سرمایه شما چقدره؟ انا آنه ویدو را فوری سرمایه نه آقا سرمایه چرا سرمایه سازمان چرا چقدر... هم قفلسه هم محیط چیه اسمش هم دفتر کاری اصلا شرکت ما باید این سرمایه سازمان تیگه یه چند بکرم نه ارزش برر نه قبل دار شکرتیم هم از باندی که شما این پارچه <تصفح> رو چرا من میگم ما خودم سیسل میکنیم سرمایه مورد در ده ده موجود است شما چه؟ نه سر بید. چی تولیت میکنی؟ من چی تولیت میکنم؟ من چی کار میکنم شما چهار دلیلی تو باند من یه شرکت دارم خدا متشکرم چه اراده ای است؟ ساده باند یعنی سیستم تو بخاطر ساده باند جام میان دیگه ها؟ اصاب من نیشه دستی نکتر را بگم یه اصاب با هماندرستین کلاری می‌دهد اولا با اصلا به سرمایه من اصاب همه یه چیز شخصیه تو خب سوال کنم در سرمایه بانک شما لپس شرکتش رو به من بپرسید نه خاله جان به من کلا دو تا چیزو نمیگم هیچ سرمایه‌ش این حساب تا سهوا من میگم سنم خوب در حالا تو وقتی تو محیط رقابتی بتونید موفق‌ترش حال بول بازار رو رشد کنی یا تهدید رقابتی رو خنسا بکنی سهم بازار رو بتونید به صورت به مستمر افشا بده چقدر دیگه سرمایه مورد نیاز دارید هی چند بوده سهمات چقدر؟ اینجوری من بگم یک میلیارد گرفتین سرمایه مورد نیاز یک میلیارد بله ها؟ بله بله. تو به صد جهانی شدن نمیفکری آره؟ <تصفيق> سرمایه یعنی تو اگه ج... نه ببین دقت کن. جوابگوی مشتریانت باشه، جوابگوی نیازهای بازار باشه یک میلیارد تومان. حالا پس مثلا میلیارد تومان. خب؟ اینجا ما میگیم سرمایه مورد نیاز ایشون در مقابل سرمایه موجودش 1 میلیارد تومانه. یک میلیارد تومان کسری سرمایه داره. خب حالا هر چقدر سرمایه سرمایه مورد نیاز در برابر سرمایه در دسته زیاد باشه عدد پایینتری رو میگیره کم باشه عدد بالاتر رو میگیره ایشون الان عددش این خوب نیست حیف چقد سرمایه مورد نیاز بیشتر باشه بدتر دیگه از نظر دید مالی بدتره آیتای بعدی جریان نفتی نگی هر کم باشه عدد پایینتر هر چقدر زیاد باشه عدد بالاتر جریان نفتیه شما چجوریه کمه یا زیاده کمه كم. کمه كم. عدد پایینتر میگیره یک یا دو میگیره متوجه ریسک موجود در کسب کار ریسک موجود در کسب کار چیه؟ نه، ریسک یعنی همون تحریم نه نه، نه، نه، نه این داره، این هم آه، یه چیز دوتا نه، این... حالا، بینوری اه... این... دست درست بمونتون، مثلا یه جنسی یا تولیده چقدر ریسک داره آه. ببین، تولید چقدر ریسک داره من الان ایشون شما تولید میکنی شرنی مثلا تر می‌بینی چی چیزی بعد تولید کنی، بلدی موادش تو بازار هست؟ غیر از اینه؟ نه. خب معالم یه اردن دارم از پالایشگاه آبادان یک ساله. یه موتور 18 استیجینگ. ما توربین بخار تکنولوژیش برمی‌ره به 100 سال پیش. ما علام برای آمریکایی ام روتور آمریکایی ما توربین بخار از پالایشگاه آبادان گرفت. قیمت پروژه حدود دو میلیارد تومانه. یک سال آره بچه‌ها ما دارن تحقیق میکنن که جنسش چیه، مقاتش چیه، چه جوری باید بسازن، چه مواردی رو باید در رابطه با ساختشون رعایت بکنن. یک ساله. بخوَنن یا نخرن؟ ها؟ بازار فروش نه نه نه، اوردر شده. میخرن. با تو مراجعه این که طول شما این کلاژ تولید بشه، بر. ما موفق به تولیدش بشوید، به مشتری بدین، مشتری راضی, راضی باشد داستان خاص قبول داری اینجا ما دیگه ریسک کسب و کار ما بالاست نسبت به ریسک کسب و کار ایشون و هر چقدر ریسک در کسب و کار بالاتر باشه عدد کمتر پایینتر میگیره هرچقدر ریسک کمتر باشه عدد بالاتر رو میگیره درست میگم گرفت قضیه رو دوره گردش موجودی چیه هم مالی حسابداری خود اینا متتون جواب بده دوره گردش موجودی سوال ما میگیم دوره گردش موجودی اگر آرام باشد عدد پراییتر اگه سریع باشه عدد بالاتر تر نمو چقدر زود به پول میرسی؟ آف. دوره گردش موجودی میدونی چیه؟ از زمانی که تو میری پول میدی، آرد میخری خب؟ بازه آفرین، پول میدی آرد میخری، شکر میخری چه میدونم؟ بعد تولید میکنه، تبدیل میشه به شیرینی و بعد به پولت میرسی، این دوره ای داره این دوره ممکن در روز باشه، 15 روز باشه، یه ما باشه، یه سال باشه، دو سال باشه تو بیزینس ما فرزن رو چهار پنج سال بیکشه فرزن تو بیزینس ما دوره گردش موجودی میره رو 4 سال پنج سال دوره گردش موجودی تو بیزینس ما خیلی آرومه، کنده پس عدد پایین رو میگیره و اگر باشه تر داشه عدد؟ بالاتری گرفتی آره، چه بحث هیچ چیز نداره آه، من فرم. نه نه نه نه، ببین. ببین تو خودت تو بیزینسی، من منم تو بیزینسم. میون گیر شه خودت باید تو... بزنید. مثلا دلخره 15 روزه، ده روزه، یه ماه اوکی، یه دو ماه اوکی، سه ماه اوکی. ولی بیشتر از سه ماه بشه دیگه داستان داره. با این هم آره، یه چیز دیگه. البته بس که شما چه که می‌دی یا نه. آره. هستش دوستان، الان شما چکلیسته میبینید؟ با تو اکسل من دارم وارد میکنم من برای شرکت خودم بازگشت سرمایه در سازمان من از یک تا شیش میخوام نمره بدم یک ف... نبینیم؟ یک بدترین حالته، شیش بهترین حالته بازگشت سرمایه در؟ سازمان ما خب بازگاش سرمایه در سازمان ما 5 از 6 نسبت بدهی به دارایای خالص 6ه یعنی مشکلی ما نداریم متعادل نسبت بدهیمون عدد بالا 6 بهترینه یک بدترینه خب نقد نگیمون از یک تا 6 من نمره دو بهش میدم <تصح> آره سرمایه مورد نیاز در برابر سرمایه مورد دسترس افتضاض من از تا 6 عدده دو بهش میدم ارماهی مورد نیاز همون بود که مثلا منم گفتم نیاز. آره، آره آره ما شما یه ملیارده، مانو ما رو هفته میلیارد. این عدده، سرمانه مورد نیازه بسید، اون چیزی که گفتم مثلا من داشته باشم که بهتر بتونه جواب نیاز مشتریانت باشه جریان نخته از 1 تا شش تو سازمان ما پنج. اوک ریسک موجود در کسب و کار ما افتاز دیداز نبینید؟ دیداز... نبینی؟ دیداز... دیداز... دیداز... دیداز... الان چی؟ دیداز... ریسک موجود در کسب و کار ما است. عدد یک من میدم دوره گردش موجودی است. عدد دو میدن تمام شد حالا داستانی که وجود داره ریسکی که وجود داره که کسب کار افتضاح سنینگ که خیلی بالاست ریسک افتضاح یعنی بده آره دیگه ریسه یعنی ورسه دیگه بده دوستا این اعداد من نمره دادم دیگه دروسی از اینجا چه اوریج این هفته عدد چند میشه اینجا من نوشتم تو این اکسل محاسبه میشه اوریج اف اس اف اس یعنی financial strength یعنی قوت مالی اوریج چند شده سه از چند؟ از شیش یعنی قوت مالی سازمان من متوسط نه،, متو... نه دو دیگه سه و دو سه، دیگه دیگه و چی؟ یه سرش خوب شده بود همش که استرس نیست. پنج, پنج داریم داریم پنج داریم. سه تا پنج شش, شش سوال خیلی سؤاله تو وضعیت مالی شرکتی تو میتونی میگی فکر کن وضعیت مالی یعنی طول. خب وضعیت مالی یعنی وضعیت مالی یک یعنی سازمان. خلاصه مالی حساب داره که شما گذره تو هفت تا سوال جمع شده بازگشت سرمایه خیلی مهمه تو مالی نسبت بدگی خیلی مهمه نقدینگی جریان نقدینگی مهمه ریسک موجود در کسب و کار مهمه دوره گردیش موجود مهمه دقیققا این هفت عامل اگر این هفت عامل رو تو همش عالی باشه که تو دست تو تو جیمتزار سیواره چرا دارم ماربورو، لایت بکششو، اشکوی پردارم، پول میاد و رید این واقعیتیه شرکت هایی که مشکل نقدینگی ندارن ما میگه مشکل مالی ندارن یعنی حل برای دیگه مغازه ها درسته؟ لباس فروشی، مانتو فروشی، روسری سری فروشی، مثلا حالا تو کالایی که برای خانم هاست یا فردی نمی الان انا شما مثلا تو پاساجه چرا پالا بگی، پاساجه تیراژه تندیس پاسوجی که تو ایران وجود داره من فکر می کنم اکثر این کسب و کارهایی که وجود داره این عادلش عدد بالاییه. ببین علی پدرخانم من مانتو فروشی داره تو تیراژه. گفتم گفتم این بازگاش سرمایه‌اش اوکیه. مشکل نداره. البته همش اون نیست. ببین من در واقع نسبت بدهی به داره. بدهی نداره. اصلا این ها به درکار خیلی کمه نفدینگی، جلیان، نفدینگی، فوق العاده بالاست اوکیه ریسک موجود در کسب و کارشون پایینه این ریسک خیلی مهمه دوره گردش موجودشون سریعه، پول رو میده قلویست که جنس بده پول میگیره از مشتری این دوره کار ای؟ میکنم نه مثلا ماه بدبخت بیچاره جنس را تبلیل دادیم به مشتری متوجه یک ساله خ خب یک سال دو نفر دارن بگیری میکنم، پول نمیده الان به این نشه رسیدیم، بریم تو سایت مشتری مدیر مالیشه قام بخامش، حالا اسمش هم نه نیبرم بخریم خریم، میتیل بهشون بدون که پولمونو بگیریم این واقعیتیه این ما میگیم دوره گردش موجودی العاده کنده فقراده کنده سوالی هست؟ گیریه شد براتون. ها؟ بله قوت مالی رو پس ببینید قوت مالی رو شما با هفت سوال میتونید پاسخ بدید چه آقا مالی مانی چجوریه در سازمان پاسخ میشه نه. هم خالصا به آن بگیم نواد شوال رد شوید چون استاد نوشتن شاید و بگیم نواد شوید نردینگی رو این بگیم نواد شوید پاسخ سمایه خوال نسبت قدعی به دعایی خالص خب این رو استاد سه نقدینگی نقدی چهار سرمایه در برابر سرمایه در دسترس 5 پنج جریان جریانی نقدی ریسک موجود در کسب و کار هفت دوره گردش موجودی فقط شما مافره توی بیزینس کردی هفت عامل فوق العاده سر داشت فوق العاده یعنی واقعا تو مالی عامل دیگه‌ای هست که مهم باشه چه نویشی نشده باشه نه یه هفت عامل واقعا این فوق‌العاده اولین با باعت خودم برام یه سازمان میشم به من مشابه بعد بخوام ببینم این سازمان از نظر بود مالی خوبه, خوبه یا نه یه هفتا سوال سوال به بدهی داشت، مثلا هزار تومن. چقدر طلب دو هزار دوره یه دردش چند وقت اینی از چقدر زمان میبره که متریال انجام بده تا به پولت برسید طرف ب دو ماه، سه ماه، یه ماه تو چجوری نقدینگی تو چجوری سمایه در دسترس بین با هفتا سوال تا قشن یه سازمان میتونی اسس یا میبره قشنگ تو چقریس نمره میده از 6 مثلا بریم نمره اون نظر بود ماده چیه میشه در واقع جذابیت صنعت شما همین جذابیت نه، این جذابیت نیست که بود مالی مثلا آره از نظر قدرت مالی ما متوسطی خیلی نه, نه. متوسطی نسبت به اون تایمی که پولا میخوان بگیریم، آه. خیلی زیاد طول میکشه. مال ما خیلی آره؟ <تصفيق> خب جوریه نمیشه حالا شما چه از سود سالانه چقدره؟ ولی سالانه یکی من میخواه؟ اشکال نداره، ببینی نه، اخو محقصه مشکل نه <تصفيق> حوالتی سالانه نشدیم آنه محنوی ببین ما خب حالا، مثل سالانه متبسط چقدر سودته؟ سود قبل از مالیات پی بی آی تی چقدره؟ هنوز ته نهی بودیم سالانه چه اینچه سالانه کار نکردیم بابا یه ماهان اتضاره که خود من دارم سال سال پنجا ها ماهانه؟ ماهانه؟ نه نه سالانه چند نفر بودم این سال با چند نفر شما سال به شما کارمند کارگری کسی که نه کارگر کرستم خودم مدیر خودم خب خود چند تا کارگر؟ مم. شیش تا هفته شش هفته آکی؟ با او شش نفر سوال 150 میلیون درسته؟ ما با 120 نفر دفتر و اداره و کارخونه و برو و بیا متوجه؟ سالی همین امسالمون شد دو میلیارد و میلیون میلیون 3.50 حالا نسبت دیگه نسبت با 6 نفر به با این همه برو و یا با پروژه آی رو بزن به زادت دو برابر بیشتری. این چرا؟ به خاطر ریسک موجود در کسب و دوره گردش موجود قوتهای مالی. خرخ یه چند استراحت اساتید کنیم؟ خسته شدید؟ ها؟ نه کلاس شما مونم